سلام به شما شنونده عزیز امروز یه متن یه پیام خودمونی و جالب رو میخوایم با هم بررسی کنیم پیامی که یه استاد زبان تخصصی برای دانشجوهاش فرستاده و خیلی یعنی خیلی دلسوزانه به نظر میاد میخوایم ببینیم حرف اصلی این استاد چیه و چرا انقدر تأکید داره که یادگیری زبان تخصصی خب خیلی فراتر از یه نمره است. بیان یکم امیخ شیم تو این پیام. سلام. بله. متن جالبیه. چون دقیقا میزنه به هدف. یعنی اهمیت کاربوردی زبان. یه جورایی نگاهش با اون نگاه سنتی با آموزش فرق میکنه. تمرکزش رفته روی اینکه آقا این مهارت‌های زبانی چرا برای آینده شما، آینده حرفه‌ایتون مهمه. دقیقا نکته کلیدی همینه استاد خیلی صاف و پوسکنده میگه بچه هدف نهاییتون نمره نباشه هدف اینه که این زبان تخصصی رو مال رشته خودتون رو واقعا یاد بگیرین چون لازمش دارین تأکید میکنه که دنیای کار حتی همین ایران خودمون خیلی به انگلیسی وابسته شده و این مهارت کلی در رو بروتون باز میکنه آره و قشنگیش این چطور یادگیری زبان رو ربط میده به به یه جور سرمایه روی خود دانشجو روی شخصیت حرفه‌ایش میگه مهارتهایی مثل تلفظ درست، روان خوندن متن یا مثلا فهم دقیق گرامر اینا پایه اون شخصیت حرفه‌ای هستن بله بله این دیگه فقط پاس کردن درس نیست یه جور ساختن خودت انگار درسته تو پیامش به یه سری گرامر هم اشاره کرده مثل حال کامل، نمیدونم ساختار مجهول، گذشته ساده و استمراری ولی بلا میگه که آقا هدف نیست که فقط قاعده حفظ کنین. هدف اصلی اینه که شما بتونین یه متن تخصصی رو اول درست و روون بخونین، بعد با کمک همین گرامرها دقیق بفهمین و ترجمه کنین. گرامر ابزاره یعنی. دقیقاً همین نکته خیلی مهمه. یعنی تاکید روی فهمیدن و خوندن نه فقط تمرین خشک گرامر. اینجاست که آدم میپرسه خوب اصلا مهارت واقعی زبان رو چطور باید سنجید؟ انگار استاد میخواد دانشجو رو به یه سطح کاربردی برسونه، یه سطحی که فردا رفت سر کار بتونه یه مقاله رو بخونه بفهمه کارش راه بیفته. آها و برای اینکه کمکم کرده باشه یه راهکار عملی هم داده برای لغت گفته از این های لایتنر استفاده کنین میگه حتی لازم نیست خیلی خودتون اذیت رو کنین روزی مثلا 20 دقیقه وقت بذارین کلی لغت یاد میگیرین اونم بدون فشار زیاد. بله این روش لایتنر که خب اساسش همون تکرار با فاصله است واقعا برای حفظ کردن مخصوصا لغت خیلی جواب میده چون درست موقعی که نزدیک یادت بره کلمه رو دوباره بهت نشون میده این کمک میکنه بره تو حافظه بلند مدت پیشنهاد این روش هم نشون میده استاد فقط دنبال درس دادن نیست دنبال راهیه که یادگیری موثرتر و راحتتر بشه آره این خیلی خوبه ولی یه سوالی که پیش میاد اینه که خب این تمرکز روی خوندن و لغت با اپ آیا کافیه؟ یعنی مثلا جای تمرین های نوشتاری و مکالمه رو میگیره گیره؟ سوال خوبیه. ببینید این پیام مشخصا روی مهارت خوندن و درک مطلب تمرکز کرده. که خب توی خیلی از رشته های دانشگاهی اولویت اوله. شاید استاد فرض کرده گرامر پایه رو قبلا یاد گرفتن یا اینکه تو این درس خاص مهمترین نیاز دانشجوها همین فهم موتون تخصصیه. البته طبیعتاً یه برنامه کامل زبانی باید هر چهار مهارت رو پوشش بده ولی خب شاید تمرکز ایشون روی نیاز فوریتر دانشجوها بوده درست منطقیه و نکته آخر که به نظرم خیلی دلگرم کننده است لحن خود استاده خیلی حمایتیه. هی hey, تاکید میکنه موفقیت شما برام مهمه. هر چی بیشتر تلاش کنی نتیجش برای خودتون بهتره. بله بله. یه جمله کلیدی هم داره. من کنار شما هستم، نه روبروتون. این خیلی حرفه بنظرم. یعنی من راهنماتونم، همراهتونم. دقیقاً. یعنی کل پیام رو میشه اینجوری دید یادگیری زبان یه فرصت یه سرمایه گذاری برای خودتون که استادم هست چمکتون کنه پس خلاصه حرف استادینه آقا به این درس زبان تخصصی به چشم یه سرمایه گذاری نگاه کنین برای آیندتون دقیقا تمرکزتون از نمره بردارین بذارین روی مهارتهای واقعی تلفظ خوب، روانخانی، درک مطلب اینا مهمه، اینا میمونه براتون و حالا یه سوالم برای شما شنونده عزیز که یکم بیشتر بهش فکر کنین. با توجه به نگاه این استاد که انقدر روی کاربورد و مهارت بلند مدت تاکید داره، شما چطور میتونین این نگاه رو تو یادگیری های خودتون بیارین؟ نه فقط زبان، تو درس‌های دیگه، های دیگه. چطور میشه از اولویت دادن به نمره شیفت کرد به ساختن یه توانایی پایدار برای آینده؟ یکم بهش فکر